باسرين حوري خلينا نكتب قران بنيو حكمتك انو سيندا كتابي مجاور من جمر نسيني حجر الكرياني علي مارکردنی کردنی دلیر سلین گگرانی و خوشوی سلاوتن لیبیت خوشحالین لبشی بستو حوتمینی خوشحالین لبشی بستو حوتمینی مجوری هجاری مکریانی حتینوالاتن فرمون لگلمان بن هجاری مکریانی بردوام او بیل سرگرانوی جنمی خوی او لوکاتی که لعصایشگاه بحنس بوا که گونده که مسحی نشین لبنان بوا و که خوی دل پشوی که دکتوری که خوکاریده که او بجماری هب لنخوشی سیل رزگاری دبیو روش بر روش برو بر بر چاگونه و دروه دوی و دوچاری چند ایشوکاری که خورزده به تاو هجاری مکریانی دنوسه او درهنان لخالیگه موارعی راستی حلقر چندمو پردهی که وک ایس که لیس که راقتر بسر کشو شانی خوار کرده استاش ایستاش که شانم وکترازوی لنگتاو تایا اصواری او سایو و تنیا سی اکم کرده کد. تفریح من اواران دا قدم لیدن لناو باقچه زورو هراوکانی سر بکلیسه. روشان یک شمن شم دا چوین کلیسه. لغیزی نوش کرنده دا, دا دنشتین که زور نوشه دی بحناس خویان تاسو لوزده جوانترین جلکیان دبرده کرد پیویش با جلکی خوین و ریشی تاشراو لکلیسا ریزده بون همو بونی اتریان لیده هد لپشت پنجره کی که پرده داری نادیاره و ارگ لیده دراو دستکچه که خواپرست بگلگورانی کلیسا ینده گود مردوشی دخسته زوقه و کشه سرسکوی قربانیش دهد ده نوا حل دستان بخوریان بلاو کرده و منالی چکوله لدعوه دایوینی شوریانده دا گرتن. دادگود دایمم ممدن بگرگی دکن. براستی سیرانی خوشی و لیکشمی کلیسی کاتولیکانه نظرش گناه نیو ازادی. روش یک دوی بلاو بونی چوبم لسربرد لسر برده که قراغره دانیشت بوم کچیکی قلاوی جوانی دی کنوی ویکتوریا بو حد رابرد او ریکی گوتی او بوا با باوردی و سنزدانه و زقلیم دروانی نیاز وتم دکتور د ل شش کیلو قلو به چد بیو بیر لود کما هر لا سنت د شش کیلو زیاده چ د شش کیلو به تایمن تو جونتر د بو مونج د بو ما گوی زی از پک نیو رویش چرچ کسیف رنگ زردی تولخ بهزو توان ب مرخ مرخ سر ل ایوار یک ل سر برد یک حالت روش کابوم سیری روجابون ل دریا مکرد دمن بو با ورک برازیش بی حال حل دستا بمینی کچیک بلامات چپری احوالکی پر سیم لورا میا گوتم براستی کیجی لبنانی زور ل عربی تر بمالیفت ترنو جوانتریشن گوتی لاوی عراقیش کوکتوبچن بچن لاوی لبنانی جوانترن قد گالتای هند سیر نه بو تر بخم پی کدم کیجی کی لبنانی کناوی ساده بو دوکانی لنزیک آسایج گابو روژگ نازانم چم کربیو لری کی لبنانیم دایا سئ کی جبران خلیلم لینو کسه کپول به هموشه د زانی هموشه لری پول دادکه غوتی او چیه من ژوندم ببخشا کاغذ نه بولم نو سیوه هیڅ نیاز کوم نه بو غوتی زور ممنونم او نصحت لصد لريج بن اختره قاوه خانی لنو بخښکن دودي آسایښګا تایبتی سیل درن بو یوارنه د شوینه بو هیڅ پولم نه ما بو نمدتوانی پول چای یان یک که تازه پیدا بو بو زور باش داما بوم او ما بینش هرگیز لعراق و کس نامی بونه انوسیم هر روشه که نام برده هاتو نامی کسو کاری نخوشخانی دا باش دا کردن پرسی ادی امن دین گود تو نیتا زور دلتنگ بوم تو وره هیچ کس لیت نپرسی تنها بهموی سی یان چوال نامن بو هات اویش پر رخمو پجاره لیکن ده خبری مرگی مرزا و رحمان بو، که جویا لسلام مرگ ده چنل برادران لدوری بون یکیان پرسی ما من مرزا، وقت لمرگ نترسی وای، استاش هر قصه خوش دکی. مرزا اشاره بشرایی نفت کرد و کل لای و دن رابو گتویا. کرم من اول لغازم حالی من وقت او شرایم، تا رونی که دم و دای دوا. هر نوته وشکایت دکوچه توا، بلع منوته تی ناکری توا. موی که زور به خمیله دستونی اومه مستگوره موی دشده مم. حسین و تاری حوال زور خوشویستم در دکی و بنیده. جواب کرا، لبغدا لبیمارستانی ازل و اتا جگه گولی دور آوه خواندره. نامه که با نصیبوم. به دریجای باسی خوار بردزینی دکتورانو بر تیل داوا کردنی پرستارانو فضایح سگی بیمارستانکو زلیلی نخوشخانی نصیبو. نظرم چند روش نهان نرده بو، چون که لاحاشیه ده نوسی بودی، تا قبره سربازه کم، که منگی به پیز دینار ده بودید دایی کم بخیوکاو، یاری ده منیش بده، بلیتی بخت ازمونی بودر چواه، دوسط دیناری دست کوتوه، هر دوسطی لبنسانی ری من داناوه، ایستا من دولمنده کم، بوم خدا رس خیبوتوه نبر رواته وفي المرورة يتعرف حسين ناوي يزور زغزل هاتوا فرشته رزق بسهو بيهان ناوي زوره ترسم ني خوي رج اك نعمه نوسرابو من نخوش اكم لسر مرغا حسين قطع تنیاكس اكم لدنيا دهيا ناوي عزيز قادر او لبحنس اخبار مني بو بنوسن لخبری ماری و تازم سه روز نانوآم لخم حرام کردو تا تو اینی بیگریم. جاریک لرمادی عرقوا کردیکی کنش شن از بینو سیبم حذکم بزنم ترژی نخوشی چونه؟ لورن دعوتم وقت نالی شاعرم کفر میآ، وقت توری پیچیدی تو ساقوش کستم، وقت دیدی ندیدی تو خوش و نخوشم. زیتوریا حال دسورم دل نخوشی کی لمردی؟ لچې لبنان پریشان او سرګردان پولې چک شکنهبم کبيکه م بیا نوې لقه و خاندن شنو تختہ کړدن و را بواردن کیچ لا باغلم امانه خانم دله همې دې شم براوک بدادم بګه روزیک فیز بسری کی تژه عرب حد وتی تو عزیز قادر وتم بل فرمایشت وتی او قبضه امزاکه بیز دینار د موسل ولنان کاک زیاده وب هاتوه بلا من کله حلبوب همینووی چور دیناری له خویا نه او اوخم و ناسی و نه دا شو و بیر هات با و تو او او ریله دا متو نه پاش چا بونوم زانیم ک پیوی زوږ عراق وک و امین رواندوزی شیخ لطیف بربویان با کوکر دو موکه بیچاره نه خوشه با پکی نه کوي کاتیه بکاک زیادیان زیاده روتوا راست خو بربوی خوی نردوه اگر بی دیابوان ور بربوی کانی تر او دی بردو بومد با کرا زورلکوردکان شام و جزیره و دانیجوی کود ل لبنان دهتن سریان اداموک تیبو میوان دینه جلادت علی بدرخان و خانم و قدری جان شاعر جگرخوین اوثمان صبری لویناسی کابراکش ل جزیره ک بیستبو منردون کوری مسلم مردنیش سیر مسلمان ملایکی خو یان بو شیعه بو فرق دانه تلقینی بره و مسيحی کان اگر پروستانت یان ارتودوکس با د بویا کشیخوین بوبینو کشی کاتولیک خو تینه دګیادن بومردوم راويش فرق او جوازی ده اندره اگر نه خوښي مسیحی لسر مردن بر و او رو روښي د ملاسکي کشی له دعا او توبه ده نه کړدايه نه دهشت له ګورستاني کلاسه پیاوی شهرداري بیرود بین بی بن ګورستاني گشتی. صبر یوسف در دیلګرند بوبو کشهات سری وتی دای دا کورم پیل گنہ حاند بنو الا مسیح بباروا چاوی هلیناو تیرا خوری هی دزبری کری دزبر, دزبر. دم لمنیش خواردکیوا لاچ ولا برچاوم جہان دم پرله خوش تو مسیحی شت ک شهر ہندے پی مبل لگورستان امد هر ہر یک بمردایت تا ادارہ کلیسا دزنی نوکر و قلو قوت خدمتگر هر چی پول و جلی بو دین رفندو شرط و گوم یاند کرد عزیز حمز نوکی خلق سلیماني کپیش منچوب و اول ما و دو سال داره باقد پشکالک عربی فر نبوده، هر منچو مبومه ترجمه‌ایتر لیمبو با هر دویا تختی لتانیشد منو بیو زمانی حالی بم. یه ورنا قرآنی بغدادام بود کرد و با کواش شور و شده و جامان و چوار میردهی لسرتختکی تا قرآن خلاص دبو خویراد جندو الله الله دجو. یعنی زورم پی خواش. جاری بودم کهک عزیز. ملایک الان خون زور دن نخواهد دمان عادتش نگی او خوراژ نه لچیا و تو آی که کوام ملی با خدا لسای سری تو لس لیمانی کم هیا چوار آوندیم رادیویی بسیل نرم کری وا واره یک لفر نفسی که وابو و ابو به حال حنسی دهت نرد دکتور سرم برده ده بن جوی پولکد لکوی کردوا با نوک بیت نخیر جوی لهس نبوا دوای که هات وسحال دیگو هیچم ند بیست جګ لباس پولک نمیر بدم بده پیرمیر دک رگس کوردو عرب بناوی جعفر بابان هاو جورم بو روزګ نامه شو ورګرد د سره کې راوښاندو بزی چې talihate وتم ها امو جعفر چې وتي کله بغداد راوېره دهتم دوازې برادر حات بو نه بره کړدم تکرابون دگریان ک مسوليو نادبیني نه هر برو دو مردون اول نو سراو دوازدهمش امر خوي کړدو ک من هر زندوم جاسم ناو او کريش شيخي چې چول عراق حد کس د لهجه نه دګي بو وترجماني هر تجیراویی که دو من با جگه هوا رو بانگی بوم جاره گوتی خبرم دا به بابم که تو چند به منو مندوی اویش دیار یکی زور خوشی بو با بچین لناو درن بی خوین قطوه شیرناتی که دا نایلون پیچراوی به نوار بستراوی دارینا دیاره خوشه که حالی پیچرای کلی برژاوی سرکراوی هیلان جمعه تیو را رام کرد جاسم نقلی که خوی با یرامو که جارک اوانده ت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 بم جراوه زور پیکنی وتی شرط به همون راجه طلح بیانی خو نشان یبدم جهر وقت جاسم نه د زانی من سننیم کم تر یان د زانی کسبری مسلمان نیو مسیحی روج لا صبری بو یکی سویه خو کرد وتی صبری من لفلان کاسی ها وتا غم داوه وتی صبری من لفلان کاسی ها وتا غم داوه نسرم بکوا صبجبتي نسر چی وتی او سبب مسیحیه من دنګ دې دمګوت خدای هر چی مسلمان الرحمی پیپکا او دلی بونه له هر چی مسيحي او مسلمانه صبرېجبتی چا کتد کردو مسيحي چې ګوخوره کته دعای بخیر وبوبکې راهيبېک عشق عربی کې فارس ناو بوبو زګی پر کرا بو بهره هرچونې بوک یشدا کوجاو راهيبان بو بیت اللحم تبعید کړ فارس زده ګو من هرخمی او مل بیت اللحم به بیمار من دالی ببه مسیحی که دیش پیدا دبه. ابو ایوب سر تاشکی آسایشگاه مسیحی که زرخ سخوش زوری نقطه سیری لبر بو. دا جره اوکا دو جن چوبونه لی حاکیم. بایچانی گوت میزید بینو دلیرش بده تابزانم چیته. جنکه تر پیلی امی را کشا. خوشکم. ام حاکیم زور گران جانه. منی که اناسیم با چوار لیره دکاو میزیش لخوی. کشیشیک لواز خوی دا گوتی کلکی اسپی مر الیاس لحیفا و دغه یشت بیروت کا برایک لگیو گران گوتی آیلو درویا کاش گوتی لهر شو وتنا او شاری بیروت دبو دیسن تی هل دای اووتی بخواجی باورنیا کاش بتریوا اوتی لمهنی منو وتنا او گندی دایک چون هیو جوتی بله اویان ریتیاچي یتی کیتل نوتی اما بو کاد کابرای کی زورد رج لا چای بکالک با کود بانج کرد قیسی بچنده ای شوتی احمق من قیسی د فروشم کابر تا نیقد ده تا گوتی دی باشا پرتقال بچنده 223.کان ایک او بوکا کشی شک روجن خوجبو کشی, نایوی بو کشی کی 3 توماس نوی لبریکاری خو نرد گیل اعترافات بګریو ل پشت پرده و دانش لا هر لاواو کشی خو یانه وتی محترم گناهم کرد جنی کشه توماس مواله کرد اویش وطی به چی دی وطی بخواه و کلفتا کشی وتی اه چی تریش وطی بخواه خوشکو کشی توماس قون روتی لپرده درخست وتی سی کوری سی ورخ من طاو که نکتهی که تری همون جاریک دیجره رای را وکداله کابرای که پرتقال فروش گلی بختی خوی لای حوالی که کرد که وار رسخی بریوم اویش وطی لکاسپی نزانی، وای دانیه تو سلا پرتقالت لسرسر و بانگ دکی، تاجریک مندالکی خویان تالی للایه، داوه اکا، تو دبی بلی، او کور جوانی چیه یا، اما دریش بی، چند خویان شیرینه، او دم لجاتی پرتقالک چوار پرتقالت لیا کرن؟ بیانی سلا لسرسر بناو بازار داشو، و کابرای دوینی غیبی زانی بی مندالکی سرزلی چلمنی لودزلی خویان تال گره. پرتقال، پرتقالم دوی تاجر بانگی کرد سلیدان او لحطیوی حل روانی بلالو تک پرسی اوه کوری که یا؟ تاجره کش و چونی بینی؟ چی بله چون ریایب که؟ پرتقالی لدست حطیو درین او سلیخسته و سرسر و تی با خود بینی جو رزقم لسر خودا لایک لایک گو تی بمبخشه کچکت مچ کردو قشش گوتی تی کورا من صد جرده ای کتم الاخه و بمبخشه که تر او بو کده یرای او داله جنالده ای که ساده زور جوان خزمتی کلیسه و او ده کشیش کرد روشگ دیتی کشیش نوستوه از پا با که درکوتوه لسر و زرد لنا راست و شین لبنبان و سوره بومیر میرده که یرای او تی او سر را بپرسه لدر فتیگ ده بشرم و پرسی ب ایته بو شی وایا ایوشوتی کچم اونی هه نیاکا تنیالای تو یادر کینم هر جنیا لبش ازردک اوزبه کشه دبه لزر د شینکه مطران لهر سی رنگ اسقفی گوره جنومیر دک پک ولا بری پارا نو کرحمان پپکا به هزار دبی و نابه کشر رازی بو مطرانی کن بداتی ل جنگی جنیندا کابل پشتو ل پرپالی کی توندی با قنگی کشونه پیوید ده اگر از خفیق من بده یه ماوت ویران ده بی او سر زور جران نکته گیتری ده یرای واد ده گود پیویگ با لیریک بری للای دلالیک تاشی بو حد جنکشی بردو دلالیک بری تاشی گویدی حقم پینز لیره ویدی چون بری من لیریکو هی خانم با پینز اویش بویدی قربان ای تو دزگیری ها بو ای خانم زوری زحمت دم قصه خوش لنا و نخوشان زور بو بلام کمم لبیر ماون. حاجی ای نخوشی کویتی حتا بران برم لجوره کدا نوی حاجی عبدالله تیر بو زور زو بوین عاشنا جاری گوتم تو که حاجی چون نویج ناکی؟ گوتی او منگ کوین قط نت پرسی تو کار چی و بچی دجی من گوادی شرعیم منی جوتم دور لتو حاجی بم بخشا ویتی دور لتو چی و بخشی نیچی بابود بلیم ایمالکوی چنکس اکین قاچاق چی؟ او قهبانی موسیلو بغدا لرمین دکونو خوش یان با گوادان فروشتوه ده هنریه نبسره یکی بسی با بیز دینار دیان کرین بسهره دا بار یاندکین با پایتخت سعودی یکی بسط پاوانی زیار با امیران و کربدستان سعودیو اگر زورش برچاوبن با خودی مالا شایانده فروشین نوی نوی نوی کنیزی سپی، کارت من پیر، لهر که لو سحرای من خرابه یان رگمان سعودی یاری پولی ورأي قحبة جغاري أوروپايي ويسكيو جني زور دبين قازان جي زور دكين هزاران كس لو ريازه هن كهمون رجي دينار تختو بخت دكين وكچيروكي ألف ليلا دجين لو صحرية دا عشاري وحن شرميان دانا پوش راوا دا اگا زرد قواريك راوكن ججنيانا روتن لابرسان دمرن بلام نایالن لوقتي حزده بينا مكومة دينا لخير حاجيان بجدار بن نوكا آبروي دولت بچي الراستو قرآن حكم داكن او يمن ديوما اقر حاجيان بيان او يجوك من لهموشة بشمان دابونوا لما فرساء ضلم بالابرينا